کمرکردنی دلیر سلین گگرانی عزیز و خوشویز شوتانشاد شد خوشحالین لبشی بستو پین زمینی خویندنوی کتبی چشتی مجوری هجاری مکریانی حتی نوالاتن فرمون هاو حجر مکرانی بر دوام ابی لسرجانیوی بسر حاتی جانی خوید مند خاولیو ماولیو اسباب سفر ملچمدانک دا ناو بلیټی بغداد استنبولم تا حلب بریو شو رشید قادر نوې کدانې حقوق بو بر دنیا سر قطاروله درجه سی دا د رشید لا کوریدوری قطار کبرای شی رو تکید وند رويشتو بلیټی قطاری بو هینم ګوتی او شریف بو ک سروکی حزب کومونیست عراق د یویز شخص سفر بک رازی نه بو بلیتی تا مسلموب کړم د لدمیر ریسک بک بلیتی تا تکریت مبوب کری قتار گیشت تلکوچر کلسرس نوری سوریایا د بو افسر سوری تسلیم ورگرنو لشار نوسيبين سیبین ترکی بسر رابگن پښ نیو ارو بو دهن بزندین ک سیر پاسپورت اندکن پاسپورت من سیلدارو بیمارستاني سیللی نسرابو يقولون ان يكون في دو رجل وستي با قطار باري بروي و سيل دار با قطار ممنوعه يقولون اي بي كان بخاطر خواه من اول سر مردنم چون لير لو سحراي دجيم هزيمانه امنيا بهري ندا بلان لطاوان حوارم بو هر کسي توشي بام دبرد جحياليك با كردي قتي كردي و تم بالي وتي داده يتبا ساپورت اتبزانم وري گرت و روشت پاشتاوهك هاتوا وتي جبجم برو سوار با من یشوتم آخر چون وقی من کار می دی که عراقیم لیزگا دجال زور بی افسرانی سوری که با قطر رادگان آشنم رعزم کردن آوان تان نسیبین بدبنو دلنشون که پاسپورت که با عربی نسرای و هیچ افسری که ترک جگل ختی لاتینی نازنپ خونه تو دتوانید تحت علبه برو وقی منو محموده برای کم لو بیمارستانی که توی بوداشی نمیگدن اسیم بیده من یشوتم گرانو دوا هرزان هر تو نامه کو بیه نه لقتاری امجارده عبود نوی که عربی خلکی و شش کسیتر کدویان کردی حلابیو دیار بکری بون شریکی ری بون وگونی درجه سی قطارکه هش نفری بون دگل عبود بوینا اش باسی بسی تل کچرم باگی رایو روانی پاسپورتکم گوتی کورا تو ویزی ترکانی شدنیه وتم یعنی yani دان دا بزینن وتي ترکی دا زانی وتم کمیک وتي کمیک وزوری ناوه. باش زانی نیچی قسی پیبکی اگر گو تین ویزا پری پاسپورتیان بو حل دا من دب ما دلمان جد. رزگار دکم. هر پول یکت پیا بیخنه و گوروید. تنیا چوار دینار بیالاوا. پولی زور لخلق دستینن. تا دگره توسنورو دیدنوا. من حوالی هفته هزار لیره سوریم لپیچی اگالکم داشاردوتاوا. شیز دینارم هبو. پنجاو ششم نه نیو گوروی لنو سیبین افس ثواب ایرانی خمن موبی خاتو افسر شخوشنگو جلتازه سرباز روتو نیو پیخوسو پینه بخنگو افسر یک خاتو غونه کمن وتی ویزا پاسپورتم دا یا وتی دالام ویزا پرم حال دا نه وتم اوا د ویزاش پتره ابو تی گان کزور جلو بست زمانه نې زانی و د ویزا ویزه ورګری کا برا وتی جریمه دخین اوی شوتی چنت وتی دولیره ابود د دولیره ویزه لیره ترک هفته فلسی عراق بو. یعنی لچوار قران کمتر کردکان دگل خلکو با اصایی با ترکی ادوان لقصه خویانده که قاچاق چی مرفروشتن بون با کردی دادوان تاکز نیزانی کردیکیان بایوی تری گود کچیکم هیا عمری هش ساله هود زمان دازانی زمانکانی کردی، ترکی، عربی، فرنسی، ایتالی، کلدانی و یونانیش مالکه ما لگرکی که پرا لهمو چکمل مدرسه یونانیان د برخوندناو بو ته ترجمانی همو جیرانه کمن ابود کبه مصلی په بو بزور نانی درخوا دمو هاو د زور خوش بو پیشنیورو لهلب د بزین ل ازګه بانجان دک تاکسی تاکسی بو بیروت بلې تقهی قطرم دریو خصمه صندوقی زبلاوه چمدانم ده بخوان تاکسی کبه باته بیروت دیتم عبود پیدا بو پنجه لخواون تاکسی کرد. وتی حاجی او کردوستی منه حاجی وخت چندوکی نوی خوابه بیا بټرسو اوذر خوای چې مدن دګر ته بجیښتم کورقلی پر سیم کوبلی تاګت و تیم دراند مو غاری دا صندوقه زبلکی پشکنی پاره پارچه چرچی بلېت دو دای به باجې اسګو برد می با فایتونیک دګلین چم اوتل پر سیم کاک عبود بونت یشت بروم او تیبره امه رفیق رابون ام خواون تاکسی و دز وسکبابن خلق و تکان دای ناسم. لو انا بو تویوانه خوش کژدینارد پیه هربد کوژن شوب قتر دتنرم سلامتره له اوتل نهاری بو کرم چون کوت سیرانی کی میدانی بر اوتل منیش قرتالا پرتقال کم کری دغلی هنام او اوتل بلیتی بیروت ببر بون دوای شی خوردن با فایتون یک بردمی اسکو چمدان کلو پلی لسالونی چاو دیدانو به هزار زحمت پرتقال گم بجهش دی من حق زحمتی خمنه باش عناوین قطر لیز جویستم چمدان کم وا قفل نکرای وا کنکرای افسر یکوسی پلیساتن لجگری قشق قاشق و توین برع. آو چمدان چیتی داعا؟ منجبوتم آفندی. هیس نی هندیج لجگری لندنی. و توی بیک وا و تو من نخوشم خودن بیکن وا. افسر پلیس شلوکد بون بیا نکرای وا. و ازین لحنا لجگرشی توین بوم کن دو کلو سجوخم کرلی واگون قطر دو رو دریجور جگه پنجاکست هر دو کس لسرکوسی تخت دو نفر دعنیشتن جیرانم لده یکی سوری بو دیار بوزور منال بارو هجاره دو کلو سجوخم دا یکبیبا بو منالان لسپاسی او دا جگه که خوشی دامیو کولی بری خوشی پیدا دامو رکشم قطر تا شاری حمس رویشتو دبوای سعاتی گوچان بدین تا دیگورن لحصاری از مرحاض لشیع کابرگو تی به عربی نازن شده بی، ای خداه، لبغدا مرحاض به آودز دلند، لر دبیت شدی، او جو تی قساکی خم گوری وتم، مباستم مباله مبال، وتم بخواشک نابم دنادن داعی، وتم خلا، وتم کز لره خلا نافرشیه، کابیک لوله و تیجان بترایکو وتم دبلی بیت المايو رزگرم که، هو بچو لی ب سواری قطار بو مو ام قطرش واگونی هشت نفری بو تنه کابره کم دگل دواگون دا بو چمدانی پی بو حاجی کی مصری بو من بله جای بغدایی او بزاراوی مصری جاورو کر لو خورا داریانا زور بگران اویش بني و اشارتی دستان تیگ دگیشتین باران زور باری بو روخاوی که و قطری بست بو حاجی لو مو قطار که ری قطر خویندک راو دا ب لپر قطر رویشتو حاجی بجما. هرچند و هاوارم کرد دنگم بکس رانه گیشتو، اقلی اوشم نبو زنجیری اجیر راکشم. کشم. لوره با قرگیرانه، دو ساعت لوقت درانگتر گیه ازگی بیرود، قطر تاقه غواره یکی لنما بو، نپیشوازی نا کر، نانبال، نا چمدانی حاجی لین ببونه توق. تو. توبله حاجی چی بسرات به؟ لپر چوار کس لطران بیلک دابزینو حد نبر وگو نکه، اوتین، کوچه مدانی حاجی باید بین وتم تا حاجی خوی نی نایدم و تیان دی نایدم نایدم حرام لافسری کرد هر بیست تیان هر آدکم خویان خسته و تورنبیلو ران کرد افسر هاتو بامجر راوا گویی زور باشد کرد اگر حاجی نهات لمانتی قطار حل لو لوقسان دبون حاجی لتورنبیلک دبازی گویی کبجیم عمل سر جاده دستم با تورنبیلی چوار کسکه حل نه کازانیان چوار شم دن لقطر ده بجیان یشم تو فرشته منی، نه چهش چمه بچن، هرچی دارایی همه دوانده همبال و تاکسید است نکوه چرچیا ناچرمنی نخوش و حاجیم الباریک و یکمان یک مندو چمدن چند میتر یک دوردخط و ام جرنوری اوی ترده زون مندو بوینو چیواش نروی بوین حاجیم به جایشتو سلطه رو ایشتم لخیواتی که دومان و جوامده بو یکیک بکردی دیگو ام رو قضته تخونده و دیگو قضته یعنی روشنامه بنګم کرد دو لوحات نه درو هي من چمدان کنه لسرشان شان دانه پښتو زګیشتینه تاکسی کو نیه نوشار حاجی د چوه ماله آشنا من گوتم د سم اوټیلونه شارزه حاجی سوین دی خورد ته تو به خاطر جمعی ده نه بزنم نارم ل میدان بولج له اوټیل ایک جوړی سرمای قطارو گرانی چمدنان زوري کارتې کړته بو له اوټیل او اندخین رشامه کلامه بو خوینم د لژدان ماوه اشتیام بو شو خوتم بیانی در کودمو لرستوران یک داوی کباب مکرد. جنه که زور به دعیه جگره بلالیوانوه لوبرموه دانشته بو. لپس تا چاویلی داده دا گرتم. آی بکل که خیعویه و کس نا قینچکه بمور و تماشام کردو بقلسی رویلیوار گرم. با تاکسی چوم سفارتی عراق که بزنن من نخوش یانم. دو لیرم دا با تاکسی. سفیر گوتي پیوی ناشتارزا دا به توانی سوری ترامبای پنچ قرشه دشو نه دوسد به ترامب ګرېوه به چو خیابانی پښتره تاکسی لين بلې رېګ ددبنه آسایښګای سیل دارن مگر خلک یې سوریا بو پول پرستی بغن لوبنانی دنه اجمیش دس کیان لدوناکا لکابره کی بسرو سیمان پرسی خیابانی پښتره لچویا متي چم د دې پدبلم متم چل بده می ګوتی چاره کې لېلیک دی ورګرتم ګوتی یېره ل درگاه عسایش جاول لپاش پرسیار و ورامی پیوست بردن ما تبقی سیلدرانی فقیر رو تختیان نشان دم. به حناس یا به حناس گندی که مسیحینشین لبنانه، لروجلاتی بیروت و هزار و پنجاه متر لبه برست را عسایش جا کب و نیویو سربکلیسای کاتولیکی فرانسهای دریج نانی راهی با و ترک دنیای جن که کم امیریان پیدا کرد واتد ژن ترک دنیا دنیاکان کاریان بوده کرد و گوتن ما سیر. خوشک هر چیلہ درمن کردنی نخواشن قازند کرے در با سپای فرانسه اسایشگاه 3 طبقه بو طبقه چوارمی سینما بو طبقه سیم مکتبی دالمنډو خوان پارٹی زل بو منگی شز دیناریان بو ادن خوراکو درمانو، اسراحتین لو پر چا طبقه نوراز راس بو فقیرو بیکس هر زند نخوشی عراقی طبقه خواری بو نخوش فقیرکن یمای عراقی منگه به ۱۵ دینار به خودکرین بدمانوا خوراک ها تابله خراب درمان زور کمو و بدستندا حرمت خوازجا به حالی سگ دکتر کان به هتیوی لکلیساب به خودکردن لا فرانسه پی خورند رابون هر شش من دسته ای کنده چو فرانسه بو زنان زیاد بونو کد هات نو دستکیتر دچون تنهشتی که خدا پیدا و کانو داما و شریکو برابر بون سازگار و چشکی خورتاو دیمانی جوانی چیه ای لبنانو دکتورکان بون. همو روش بیانی دستین بو طبقه سیده برد کجوری خواردنی با آواتی خوان حلب جیرنو بوین لینن. امش حو تیجاریک شوربه گوشت وشترو همو جمیزستان نیسکو پاقلا. لدون منگی به هرده زوربه جم کنگری لعودا کلاو. همو هاوین شوربه کلا کبو. سال دو جر روشی کریسمسو ججنی فسح گوشت مریشمان ببرنجاو حبو روشی چند جر ماسیر سریان دادین دو روش جاریک دکتور دهات بسرمنده دگره ده حوتی جاریک مامیرو همو دکتورو ماسیرکن که پرستر بون گشتکی بکامل انده کردو بسرینده کردی نوا شوانه زستانیش با دبو باش منده پوشن بلام سرمن لدرو بی درکو پنجرشی انده کرد نوا تالخوا هوای پاک حلمشین زور جار بخرته بفرماریمی بنتخت کنمن و خبردهاتین که بفریان لیده باری تا چل روژیک زور کل لام بومو گرمام گئی بومو چل درجه ورده ورده حتم و حالو بپای خومده گرم اودم چاری سیل زور لیسته کم تر بوم تنیا عملی پراسوانو حلقشان ریال ریلم لوحه بومو درمانش درزی ستروپ توماسین بومو امیش زور گرانو فقیر نه اکود زربن نخوشکانی حوالم خواندوار و روشن بیرو، ماموستا و نوصر و شعر بون اویده ما نوا، کونه پولیس و رانندو، توسخوری دشتو سره پلی نوانجی زور کن بو مگین چلون که با؟ دنه دبو لسر تختکر من نبزوینو، خورماندو نکین چین نخوشکانی پیش اما، ورده ورده کتیب خانه ای کن پیکوه نبو پترل دو هزار جلد کتیبی زور چاکو بطمی تده کو بو بو سرپرست و اگر در کتیب خانه نو پاره کردن زور کم ابونه کتابخانه خواند نو ورده جیره که اویش در رایوه به اگر جارک دوله مند با سردانی خزمی نخوش یان با سیر نخوشانی سیل به اتایو لروی چیتن و مندی بگو تایا چیتان باب کرم دنگو کتیب به کتیب خانه لوبیه کاریو نبزود نده همو کس سری بسر کتیب داده گر تنانت نخوانده ورک تنانت کابره شیله ابو مصطفی شیخلی نو بو پتل شش سال بو لاسایشګه ما بووا دلالي حراج بازار بغداد نه خویندوار لاسایشګه خویندبوي بو بووا خویندوار شي عربي ملایده بزاندن من یو تینوي خویننه وا دستم بوخه مکتب راکشان هیڅ کارم نبی د به چبقم قربان شان ملي ملم دی نه الريزم دګرتنو وش کوتر اي تاریخی و ادبی بیوچان و سانو، روش تا و شو تاخو بلام دادباتو، چولکتیب نترو بکنم، نسراوی تها حسین، اقاد، سبایی، یزبگ، سلام موسا، حسن زیاد، دیوان حافظ ابراهیم، شوقی، دیوان اکتب نسر و شعرانی کن، تاریخی کن و جهان و ملبندی، زنجیر نسراوی قدری قلعجی، کمال گوارکانی دنیای عرب راستیکی که نزنم چن و چن کتب میخوینده ترجمه لشکسپیر، آناتول فرانس، ویکتور هاگو، مارک تواین، بالزاگ، مکسیم گورکی، چیخوف، گوگول، کتبی بیت عرب، فلسفکان، ایلیاد و هرچی لنسرانی اروپا و کراوت عربی خلاصه چیم نهشت کجار و دو جاری نخوینده تنانت کتابی مقدس دو جر سر لبرخ وندوا دو سال بو بوخند نو فیربون زور درفتی کی زیرینه هم له معلوم ده هم له عربیده دسمایی کی زورم دست کوت گوگرانی خوشویستو ارزومندانی دونه کتیب لیره داو بمشیویا حتینا کوتای بشی بستو پیانزمی خویدنوی کتیبی چشتی میجوری هجاری مکریانی تا بشی کتر شوتن عرم، جیانتن شادو بختوار.